فصل سوم عشق و انحطاط آن در جامعه معاصر قرب اگر عشق استعدادی است که به انسان بالغ و باداور تعلق دارد پس به این نتیجه می‌رسیم که استعداد عشق ورزیدن در فردی که در فرهنگ معینی زندگی می‌کند بستگی به اثر این فرهنگ در شخصیت او دارد اگر در عشق در فرهنگ معاصر قرب صحبت به میان می منظورمان این است که سوال کنیم آیا ساختمان اجتماعی تمدن قرب و روحیه ای که از آن ناشی می شود، اشق را به سوی تکامل هدایت می کند یا نه؟ مسلم است که پاسخ این سوال منفی است. هیچ ناظر واقع بینی شک ندارد که در زندگی غربی ما، اشق، عشق، عشق برادرانه عشق مادرانه و عشق زن و مرد پدیدهی نسبتا نادر است و جای آن را صبر گوناگون عشقهای دروغین که در حقیقت صورتهای مختلف انحطاط عشق می باشند گرفته است. جامعه سرمایداری از سویی مبتنی بر اصل آزادی سیاسی و از طرف دیگر بر اساس بازار به منزله تنظیم کننده اقتصاد، و در نتیجه مناسبات اجتماعی استوار است بازار کالا تعیین کننده شرایط مبادله کالا است و بازار کار خرید و فروش کار را تنظیم می کند هم اشیای سودمند و هم انرژی و مهارت سودمند انسان به کالاهایی تبدیل می شود که بدون اعمال زور و بدون کلاهبرداری در شرایط بازار مبادله می شوند در شرایط موجود بازار، کفش، اگرچه قابل استفاده و مفید است، ولی اگر در بازار تقاضا نداشته باشد، هیچ گونه ارزش اقتصادی یا ارزش مبادله نخواهد داشت. نیروها و مهارت‌های انسانی نیز اگر تقاضایی در بازار نداشته باشند، ارزش مبادله نخواهند داشت. صاحب سرمایه می نیروی کار را بخرد و از آن برای افزایش سود سرمایه خود استفاده کند. در شرایط موجود بازار، صاحب نیروی کار نیز باید آن را به سرمایه دار بفروشد. البته او مختار است این کار را نکند و از گرسنگی بمیرد. این ساخت اقتصادی سلسله مراتب ارزش را به وجود آورده است. سرمایه بر کار فرمان میراند. و اشیای انبوه یعنی آنچه مرده است از کار و نیروهای انسان که زنده اند ارزش بیشتری دارد. اساس سرمایهداری از آغاز همین بوده است سرمایهداری معاصر نیز اگرچه هنوز همین خصیصه را دارد اما در اثر تغییر تعدادی از عوامل کیفیات خاصی پیدا کرده است که مسلماً تأثیر عمیقی بر بافت شخصیت انسان امروز دارد ما همه شاهدیم که در اثر توسعه و تکامل سرمایداری جریان انباشت و تمرکز سرمایه با چه شدت و حدتی صورت میگیرد. موسسات مؤسسات بزرگ سرمایداری همواره بزرگتر و بزرگتر می شوند و کوچکترها خفه شده و از میدان خارج می شوند. در این مؤسسات بزرگ سرمایداری، مالکیت سرمایه روز به روز از کار مدیریت آن جدا میافتد. صدها هزار سهامدار مالک این مؤسسه هستند یک هیئت مدیره که همه حقوق خوبی می گیرند اما خود مالک مؤسسه نیستند مدیریت آن را به عهده دارند این بوروکراسی به تحصیل حداکثر سود چندان علاقه ندارد بلکه بیشتر در فکر گسترش مؤسسه و قدرت خیش می باشد. تمرکز روزافزون سرمایه و ظهور یک بروکراسی قدرتمند متشکل از مدیران با رشد جنبش زحمتکشان همراه شده است. در نتیجه به وجود آمدن اتحادیه های کارگری، دیگر کارگر مجبور نیست منفردن و برای منافع فرد خود در بازار کار چانه بزند. او به اتحادیه بزرگ کارگری، که خود آنها نیز توسط یک بوروکراسی نیرومند اداره می شوند پیوسته است و همین اتحادیه ها در برابر قولهای صنعتی نماینده او محسوب می شوند. ابتکار امور هم در قلمرو سرمایه و هم در قلمرو کار بد یا خوب از فرد به بوروکراسی منتقل شده است. شمار فضاینده ای از مردم، استقلال خود را از دست می دهند و به مدیران امپراتوری های بزرگ اقتصادی وابسته می شوند. خصیصه بسیار مهم دیگری که از این تمرکز سرمایه ناشی می گردد و خصیصه سرمایه امروز می باشد روش خاص سازمان کار است. در مؤسسات عظیم سرمایهداری که به طور وسیعی تمرکز یافتهاند، با تقسیم کار بسیار دقیق و عمیق، سازمان کاری به وجود می آید که در آن کارگران فردیت خود را از دست می دهند و به پیچ و مهره قابل تعویض یک ماشین عظیم تبدیل می شوند. مسئله انسان را در سرمایداری امروز می توان به این طریق خلاصه کرد. سرمایداری امروز نیاز به افرادی دارد که با شماری بسیار به طور آرام با یکدیگر همکاری کنند. کسانی که میل مصرف بیشتر و بیشتر داشته باشند. کسانی که زوغ و سلیقه‌هایشان هایشان یک دست شده و به سهولت قابل تغییر و پیشبینی باشد این سرمایداری نیاز به انسانهایی دارد که احساس می‌کنند آزاد و مستقل هستند و از هیچ قدرت یا اصل یا فکری طبعیت نمی کنند. لیکن مایلند بر آنها حکم رانده شود هرچه از آنها انتظار می‌رود، انجام دهند و در ماشین اجتماع بدون استکاک وظیفه خود را انجام دهند انسان‌هایی که بدون استفاده از زور به پیش روند بدون وجود رهبر رهبری شوند و بدون داشتن هدفی کورکورانه گام بردارند البته به استثنای این هدف که همیشه کار نیک انجام دهند در حرکت باشند عمل کنند و به جلو بروند نتیجه این همه چیست انسان امروز با خودش با هم هم‌نوعانش و با طبیعت بیگانه شده است او خود به کالا تبدیل شده است نیروی زندگی خود را نوعی سرمایه گذاری می داند که باید تحت شرایط موجود بازار حداکثر اکثر سود را برایش تحصیل کند مناسبات انسانها اساسا همانند روابط آدم های ماشینی از خود بیگانه است و هر کس ایمنی خود را در نزدیکی به جمع می داند. نه در اینکه فکر، احساس یا عمل متفاوتی داشته باشد زمانی که همهی افراد سعی میکنند تا سرحد امکان به دیگران نزدیک شوند باز هر یک کاملا تنها میمانند و احساس عمیق عدم امنیت، استراب و گناه که همیشه محصول زمانی است که انسان نمیتواند بر جدایی خود غلبه کند روحشان را تسخیر کرده است تمدن ما مسکنهای فراوانی در اختیار مردم قرار داده که به آنها کمک می تا آگاهانه از این تنهایی بیخبر بمانند. قبل از هر چیز، جریان بسیار یک نواخت کار دیوان سالاری شده و مکانیکی باعث می شود که مردم از خاستهای اساسی انسانی خود از شوق به تفوق و تعالی و وحدت قافل بمانند. اگر این کار یک نواخت نتواند به تنهایی این منظور را انجام دهد، انسان برای غلبه بر ناآگاهانه خود به جریان یک نواخت سرگرمی ها پناه میبرد. یعنی مصرف انفعالی اسوات و تصاویر کارخانه‌های سرگرمی‌سازی و از همه بیشتر با خرید پایان ناپذیر اشیای باز هم نو و تبدیل هر چه زودتر آنها به چیزهای نوتر خود را راضی می‌سازد انسان امروز شباهت زیادی به تصویر هاکسلی در کتاب دنیای قشنگ نو دارد. تغذیه خوب، لباس خوب، از نظر جنسی ارزا، منتها بدون هویت، تماسی بسیار ناچیز و سطحی با هم نوان و رهبری با شعارهایی که هاکسلی با ایجاز خاصی آنها را چنین بیان کرده است. وقتی که فرد احساس می کند، جمع کنار میکشد یا تفریح امروز را به فردا مسپار. یا بالاتر از همه این روزها همه سر حالند امروزه سعادت انسان عبارت است از خوشگذراندن خوشگذراندن یعنی احساس لذت از مصرف و جذب کالاها، تصاویر غذا مشروب سیگار مردم سخنرانی کتاب و سینما دنیا به منزله یک شیء عظیم است در برابر اشتهای ما یک سیب بزرگ یک بطری بزرگ، یک پستان بزرگ است و ما مکندگانیم، امیدواران و منتظران ابدی و ناکامان عذلی. شخصیت ما با مبادله و دریافت کردن داد و ستد و مصرف پیوند خورده است. همه چیز ام از اشیاء مادی و معنوی موضوع مبادله و مصرف است. این وضع در مورد عشق نیز جبران با شخصیت اجتماعی انسانهای امروز تطبیق می کند. ماشینی نمی عشق بورزند. آنها می بسته‌های شخصیت خود را مبادله کنند و به معامله آدلانه ای امیدوار باشند. اندیشه تیم یکی از مهمترین تظاهرات عشق و به خصوص ازدواج با این موجود از خود بیگانه است، در همه مقالاتی که درباره ازدواج‌های موفق نوشته می‌شود، ازدواج ایده‌آل به صورت تیمی توصیف می‌شود که افرادش وظایف خود را به خوبی و بدون استکاک با یکدیگر انجام می‌دهند. در این توصیف، فرق چندانی با وضع کارمندی که او نیز به خوبی و بدون استکاک وظایفش را انجام می‌دهد مشاهده نمی‌شود. او باید معقولانه مستقل باشد. روح همکاری داشته باشد با مدارا و در عین حال جاه طلب و مهاجم و بی باک باشد بدین ترتیب مشاور ازدواج می گوید شوهر باید همسرش را درک کند و مددکار او باشد او باید درباره لباس نو و دستپخت خوشمزه همسرش نظر مساعد بدهد همسر نیز به نوبه خود باید درک کند وقتی شوهر خسته و بدخلق به خانه برمیگردد با دقت و مهربانی به حرفهای او درباره گرفتاری های شغلیاش گوش بدهد. و از اینکه شوهرش روز تولد او را فراموش کرده است عصبانی نشود. بلکه از خود اغماز نشان دهد. مفهوم این نوع روابط در واقع چیزی جز روابط بستهبندی شده در کاغذ کادو بین دو نفر نیست که تا آخر عمر نسبت به یکدیگر بیگانه میمانند. و هرگز به مرحله یک رابطه اصیل نمیرسند. اما با یکدیگر با احترام و ادب رفتار می کنند و می یکدیگر را شاد و سر حال نگه دارند در این مفهوم عشق و ازدواج تکیه عمده مطلب بر این است که شخص برای فرار از احساس تنهایی که در حالت تجرد غیر قابل تحمل است به شخص دیگری پناه می برد. چون این فردی سرانجام در آشیانه عشق پناهگاهی برای خود میابد و بدین ترتیب اتحادی از دو نفر در برابر دنیا تشکیل میدهند و این نفس پرستی دوبله و دو نفره را با اشق و سمیمیت اشتباه میگیرند. تکیه بر روحیه تیمی، مدارای متقابل و غیره، یکی از تحولات و دگرگونی های نسبتاً اخیر است، پیش از آن، یعنی در سالهای بعد از جنگ جهانی اول، عشق مفهوم دیگری داشت. بدین ترتیب، ارزای جنسی متقابل، اساس روابط عاشقانه دلپذیر و بخصوص ازدواج موفق و همراه با سعادت فرض میشد. اعتقاد بر این بود که دلایل پایان ناگوار این همه ازدواجها را، باید در عدم برقراری تطابق جنسی صحیح بین دو طرف جستجو کرد. و علت این نقص را بی اطلاعی شخص از رفتار جنسی صحیح می دانستند و به این نتیجه می رسیدند که یک یا هر دو طرف از روش صحیح روابط جنسی بیخبرند. به منظور درمان این نقص و کمک به زوجهای ناموفق که از عشق ورزیدن به همدیگر ناتوان بودند کتابهای بسیاری منتشر شد. که همه مملوف بود از توصیه و دستورالعمل درباره رفتار جنسی درست و همه یک صدا به طور ضمنی یا با سراحت قول میدادند که پس از به بستن آنها عشق و سعادت به دنبال آن خواهد آمد معنی ضمنی این فکر این بود که عشق فرزند لذت جنسی است و اگر دو نفر یاد بگیرند که همدیگر را از نظر جنسی راضی کنند عاشق همدیگرند. این عقیده مطابق با توهم عمومی آن زمان بود که تصور میشد استفاده از تکنیک صحیح نه تنها راه حل مسائل فنی تولید صنعتی است بلکه حلال کلیه مشکلات انسان نیز میباشد قافل از اینکه درست خلاف این فرض حقیقت دارد عشق نتیجه رضامندی کافی جنسی نیست بلکه کامیابی جنسی حتی آگاه بودن از آنچه به اصطلاح فن روابط جنسی نام دارد نیز نتیجه عشق است اگر بخواهیم برای اثبات این نظریه که هر روز شاهد صحت آن هستیم دلیل بیاوریم میتوانیم مطالب فراوانی را که از روانکاوی به دست آمده است مورد بررسی قرار دهیم مطالعه یکی از متداولترین مشکلات جنسی یعنی سردی زن و ناتوانی کمابیش روانی مرد نشان می‌دهد که علت واقعی عدم اطلاع از فنون درست نیست بلکه علت واقعی من هایی است که عشق را غیر ممکن می‌سازد ترس یا تنفر از جنس مخالف اساس این مشکلات است که موجب می‌شود شخص خود را کاملا در اختیار طرف مقابل قرار ندهد طبیعی و بی عمل نکند و به شریک جنسی خود در بیواسط بودن هماغوشی اعتماد نکند کسی که از نظر جنسی دوچار منع شده است اگر بتواند خود را از ترس یا تنفر برهاند مشکلات جنسیش نیز حل خواهد شد اما اگر نتواند اطلاعات فرد از فنون جنسی هرچقدر هم زیاد باشد باز فایدهای نخواهد داشت اما معلومات حاصله از درمان به طریق روانکاوی بی اساس بودن این اندیشه را که دانش رموز روابط جنسی موجب کامیابی جنسی و عشق می شود نشان داده است این فرض که عشق محصول خورسندی دو جانبه جنسی است تا حدود زیادی متأثر از نظریه های فروید است در نظر فروید عشق اساساً پدیدهی جنسی بود در هنگامی که انسان به تجربه دریافت که عشق جنسی یا عشق تناسلی بالاترین خورسندی ها را ایجاد می کند و در نتیجه خرسندی جنسی مظهر همه کامرانی‌ها ها شد بناچار به دنبال این رفت که در مدار جنسی خوشی‌های بیشتری دست و پا کند و شهوتهای جنسی را هسته مرکزی زندگیش قرار دهد در نظر فروید تجربه عشق برادرانه حاصل میل جنسی است منتها در آن غریزه جنسی به انگیزهی که با هدف من شده همراهند تبدیل شده است. عشق با هدف من شده در واقع بدون عشق شهوانی بوده است و هنوز هم در ناخداگاه انسان چون این حالتی دارد. فروید مسئله آمیختن و یگانگی یا احساس عظیم را که جوهر تجربه عرفانی و ریشه احساس شدید وصل با شخص دیگر یا با هم نوعانه است، پدیده پاتولوژیک یا آسیب شناسی و رجعت به حالت خودفریفتگی نامحدود ابتدایی می داند. فروید تنها در گام بعدی است که عشق را نفسن پدیده غیر اغلایی می داند. تفاوت بین عشق غیر اوغلایی و عشق به منزله تجلی شخصیت بالغ و کامل برای فروید وجود خارجی ندارد وی در رساله‌ای درباره عشق تغییر جهت داده می‌گوید که عشق تغییر جهت داده اساساً فرقی با پدیده عادی عشق ندارد عاشق شدن همواره در مرز ناهنجاری نوسان می‌کند همواره با کوری در برابر واقعیت با اجبار همراه است و تغییر جهت عشق‌های دوران کودکی میباشد عشق به عنوان یک پدیده اقلانی و منطقی به عنوان عالی ترین دستاورد برای رسیدن به بلوغ برای فروید ارزش تحقیقی نداشت اما اشتباه خواهد بود اگر درباره نفوذ افکار فروید بر این مفاهیم که عشق حاصل جاذبه جنسی است یا همان خورسندی جنسی است که در احساس بهشیار ما منعکس شده است قلو کنیم اساسا رابطه علت و معلول بر خلاف این است عقاید فروید تا حدی تحت تأثیر روحیه قرن نوزدهم و شهرت و قبول آنها نیز تا اندازهای به واسطه روحیه حاکم در سالهای بعد از جنگ جهانی اول بود. بعضی از عواملی که مفاهیم فروید و مفاهیم متداول آن روز را تحت تأثیر قرار داد عبارت بودند از نخست اکسل عمل مردم در برابر رسوم اخلاقی سختگیرانه اصر ویکتوریا دومین عاملی که در تعین نظریه های فروید اثری قاطع داشت، مفهوم متداول و جاری آن زمان درباره انسان بود که بر مبنای ساختمان سرمایهداری قرار داشت. برای اثبات اینکه سرمایهداری با نیازهای طبیعی انسان مطابقت و هماهنگی دارد، لازم بود نشان داده شود که انسان به واسطه طبیعت خیش، روحیه رقابت دارد و سراپا خصومت جانبه است. در حالی که اقتصاددانان این موضوع را در قالب میل تسکین ناپذیر سودجویی در عالم اقتضا اثبات می و پیروان داروین با قانون بیولوژی که بقای اصلح در پی اثبات آن بودند، فروید نیز به همان نتیجه می رسد. منتها با این فرض که انگیزه اساسی مرد تمایل بی پایان به تصرف جنسی همه زنان است و تنها فشار جامعه مانع از می شود تا او به دلخواه خود عمل کند. در نتیجه انسانها ضرورتا نسبت به هم حسودند و این حسادت و رقابت دو جانبه، حتی اگر همه دلایل اجتماعی و اقتصادی آن از میان برود، باز هم وجود خواهد داشت. معالن، فروید در افکار خود تا حدود زیادی تحت تأثیر فلسفه مادی متداول در قرن نوزده بود، در آن روزگار اعتقاد بر این بود که پدیدههای فیزیولوژیک زمینه اصلی کلیه پدیدههای فکری است در نتیجه فروید توضیح داد که عشق، تنفر، جاه‌طلبی و حسادت مثل بسیاری از چیزهای دیگر از غرایز جنسی سرچشمه می‌گیرند او متوجه نبود که واقعیت و مبنای اساسی در کلیت هستی انسان و مهمتر از همه در موقعیت مشترک همه انسانها و در درجه دوم در پراتیک یا عمل زندگی که آن را هم ساختمان خاص جامعه تعیین می کند نهفته است. مارکس در ماتریالیسم تاریخی خود با گامی قاطع این نوع ماتریالیسم را پشت سر گذاشته و از آن فراتر میرود. در ماتریالیسم تاریخی نه بدن نه غرایزی مانند نیاز به غذا و مالکیت هیچ یک کلید اصلی شناخت انسان نیست بلکه کل روند زندگی انسان یعنی پراتیک زندگی کلید واقعی حل معما است بنابر نظریه فروید ارضای کامل و بی‌مانع تمایلات غریزی سلامت روانی و سعادت میافریند، ولی حقایق بدیهی کلینیکی نشان می‌دهد که مردان و زنانی که زندگی خود را وقف های بی بی‌قید و بند جنسی می‌کنند به خوشبختی دست نمی‌یابند و اغلب آنها از اختلال‌ها و های نوروتیک رنج می‌برند ارزای کامل احتیاجات غریزی نه تنها پایه خوشبختی نیست بلکه حتی سلامتی عقل را نیز تضمین نمی‌کند با وجود این عقاید فروید فقط میتوانست به سبب تغییراتی که در روحیه سرمایه‌داری پس از جنگ جهانی اول به وجود آمده بود به چنان شهرت و مقبولیتی دست یابد این تغییرات عبارت بودند از خرج کردن به جای پسنداس کردن مصرف به عنوان پایه و اساس گسترش هرچه بیشتر بازار و به عنوان وسیلهی مهم برای خورسندی و ارضاء فرد مسترب و ماشینی شده به جای قناعت به منزله موفقیت اقتصادی. در قلمرو جنسی و همینطور در مصرف چیزهای مادی گرایش عمومی و عمده این شد که هر میلی را بدون دفع وقت و تأخیر ارضا کنند. مقایسه مفاهیم فروید که با روحیه سرمایهداری موجود آن زمان تطابق می‌کرد و تا اوایل این قرن هنوز یک پارچه و دست نخورده باقی مانده بود، با مفاهیم تئوری که یکی از درخشانترین روانکاوان یعنی اچ سالیوان فقید بسیار جالب است. در سیستم روانکاوی سالیوان به این نکته برمیخوریم که وی برخلاف فروید مسائل جنسی و عشقی را کاملا از یکدیگر جدا می‌داند. معنای عشق و صمیمیت از نظر سالیوان چیست او میگوید صمیمیت حالاتی است بین دو شخص که به آنان امکان میدهد تا متقابلا ارزش اجزای های خود را تایید و اثبات کنند اعتبار و اثبات های شخصی به نوعی ارتباط نیاز دارد که من آن را اشتراک مسایی مینامم و مقصود از آن تطابق کاملا روشن و مشخص رفتار یک طرف با نیازهای مشخص طرف دیگر است. به منظور رسیدن به رزامندی های مشابه، یعنی رزامندی هایی که هرچه بیشتر دو جانبه و متقابل می شوند، و حفظ و افزایش اقدامات مشابه ایمنی. اگر از تعقیدات لفظی سالیوان بگذریم، می بینیم که جوهر عشق اشتراک مسائی است که در آن احساس دو نفر چونین است. ما قوانین بازی را مراعات می‌کنیم تا حیثیت، احساس برتری و شایستگی خود را حفظ کنیم. درست همانطور که مفهوم فروید در باب عشق وصف تجربه مرد پدرسالار در جامعه سرمایهداری قرن نوزدهم است، مفهوم سالیوان نیز در این باره تجربه انسان از خود بیگانه و سوداگر قرن بیستم است. این در حقیقت توصیفی است از خودپرستی دو نفر یا دو شخص که منافع مشترک خود را تعیین کرده و دست به دست هم و در برابر دنیای دشمن و بیگانه کنار هم می ایستند. در حقیقت تعریف او از صمیمیت اصولا درباره احساس هر دسته‌ای که اشتراک مسائلی دارند معتبر است. که در آن هر یک از افراد رفتار خود را با نیاز بیان شده دیگری به منظور دست یافتن به هدفی مشترک تطبیق می دهد این مسئله قابل توجه است که سالیوان از نیازهای بیان شده صحبت می کند در حالی که کمترین سخنی که درباره عشق میتوان می توان گفت این است که عشق به معنای عمل نسبت به نیازهای بیان نشده دو طرف می باشد عشق به معنای ارزای جنسی دوجانبه و عشق به معنای کار تیمی و پناهگاهی برای گریختن از تنهایی، دو صورت عادی از انحطاط عشق در جامعه امروزی قرب و پاتولوژی اجتماعی عشق است. اشکال گوناگونی از عشقهای اختصاصی بیمارگونه وجود دارد که نتیجه همه آنها نوعی رنج آگاهانه است و روانکاوان و تعداد فضاینده از مردم عادی، آنها را نوعی نوروز می‌دانند در ادامه برخی از متداول‌ترین انواع آن توصیف می‌شود کیفیت اساسی عشق نوروتیک این است که از اشاق یکی یا هر دو هنوز وابسته به شخصیت پدر یا مادر باقی ماندند و همان احساسها و انتظارها و ترسهایی را که زمانی نسبت به پدر یا مادر داشتهاند در بزرگسالی به معشوق منتقل می‌کنند این افراد هرگز از انگاره وابستگی های دوران کودکی خود آزاد نشده و در بزرگسالی نیز در پی همان احتیاجات انفعالی کودکانه هست. در این موارد شخص از نظر انفعالی کودکی در سطح دو یا پنج یا دوازده ساله باقی مانده است. در صورتی که از نظر اقلانی و اجتماعی هم سن واقعی خیش است. در موارد شدید این عدم بلوغ عاطفی باعث بروز اختلال هایی در کارآمدی اجتماعی می شود، در موارد خفیفتر به تعارضات روانی در روابط خصوصی محدود می گردد. قبلا در مورد شخصیت های مادر یا پدرگرا را صحبت کردیم. اکنون یکی از روابط عاشقانه نوروتیک را بررسی می‌کنیم که امروزه به کسرت در میان مردانی دیده می‌شود که از نظر تکامل عاطفی هنوز در قید بستگی‌های کودکانه به مادر خود مانده‌اند این مردان حتی در این سن و سال نیز مانند بچه هستند به حمایت عشق گرمی دلسوزی و تحسین مادر نیازمندند عشق بی قید و شرط مادر را میخواهند و فقط به این دلیل که بدان نیاز دارند به این دلیل که کودک مادر خیشند به این دلیل که ناتوانند چون این مردانی اگر بخواهند عشق زنی را به خود جلب کنند حتی پس از موفقیت در این کار غالبا بسیار با محبت و دلپذیرند ولی رابطه آنان با زن در حقیقت مانند رابطه آنان با همه مردم سطحی و آری از مسئولیت باقی میماند. چون هدف این است که آنها را دوست بدارند، نه اینکه خود عشق بورزند این گونه مردان معمولاً به مقدار زیادی دچار خودبینی هستند و به طور کم و بیش پنهان، افکار بلند پروازانه و بزرگ در سر پرورانند. اگر اینان زن دلخواه خود را پیدا کنند، احساس ایمنی می کنند و خود را در اوج موفقیت می بینند. در نتیجه میتوانند به مقدار زیادی محبت و دلربایی از خود نشان دهند و به همین دلیل است که وضع این گونه مردان فریبنده و گمراه کننده است اما بعد از مدتی که زن دیگر طبق انتظارات خیالی و عجیب و غریب آنان رفتار نمی کند برخوردها و آزردگی ها رفته رفته آغاز می شود اگر زن پیوسته او را تحسین نکند اگر برای خود نیز حق زندگی قائل شود اگر خود او هم بخواهد مورد محبت و حمایت واقع شود و در موارد افراتی اگر زن حاضر نباشد از روابط عاشقانه شوهرش با دیگر زنان چشپوشی کند یا حتی علاقه تحسینامی به آنها نداشته باشد مرد از ته دل آزرده و معیوس می شود و معمولاً با توسل به این اندیشه دلیل تراشی می کند که زنش او را دوست ندارد و خودخواه یا مستبد است در نظر این مردان، هر عملی که به نوعی با نگرش مادری عاشق نسبت به فرزند دلبند فرق داشته باشد، دلیل بر عدم عشق است. این مردان، اغلب رفتار محبت آمیز خود و علاقه به خورسند ساختن دیگران را با عشق اصیل اشتباه می کنند، و به این نتیجه می رسند که با آنان ظالمانه رفتار می شود، آنان خیال می کنند از زمره اشاقه بزرگند و به تلخی از ناسپاسی معشوقه های خود شکوه و شکایت سر می دهند. در موارد نادر شخص مادرگرا می تواند بدون آشفتگی شدید به کار خود ادامه دهد. در حقیقت مردی که از محبت بیاندازه و همه جانبه مادرش مادری احتمالاً سلتجو ولی بی میل به زیانکاری برخوردار بوده است، اگر با زنی با همین خصایص مادرانه ازدواج کند و اگر ذوق و قریهه خاصش به او امکان بدهد که از فریبندگی خود استفاده کند و مورد ستایش قرار گیرد از نظر اجتماعی به خوبی تطابق یافته محسوب می شود بیان که هرگز به مرحله عالی تر بلوغ برسد اما در شرایط نچندان مساعد که غالبا همچنین است زندگی عشقی و زندگی اجتماعیش را یعص و هرمان فرا می گیرد به طور طبیعی وقتی این نوع شخصیت تنها بماند تعارضات استرابات و افسردگی های شدید و بیوقفه برو چیره می شود. در موارد باز هم حادتر و بیمارگونه وابستگی به مادر عمیقتر و غیر منطقی تر می شود. به بیان تمثیل در این حالت آرزوی شخص این نیست که به آغوش گرم یا به سینه حیاس بخش مادر بازگردد بلکه می به زهدان پذیرنده و نابود کننده او پناه ببرد اگر عقل سلیم و سالم خروج از زهدان و آمدن به دنیا بیرون را حکم می کند, طبیعت بیماری شدید روانی او را به سوی زهدان و فرو رفتن در آن میکشاند. که معنی آن چیزی جز فرار و دور شدن از زندگی نیست این نو شدید معمولا در رابطه با مادرانی اتفاق میافتد که خود را با ولع خورد کنندهی به کودکانشان می چسبانند. این نو مادرها گاه به نام عشق، گاه به نام وظیفه میخواهند کودک، جوان و مرد را در درون خود نگه دارند فرزند نباید بدون مادر نفس بکشد، نباید عشق بورزد مگر در سطح جنسی بسیار سطحی، باید همه زنها را خفیف و پست بشمارد. نباید آزاد و مستقل باشد، بلکه باید برای عبد بیکاره یا تبهکار بماند. این جنبه از مادر، یعنی جنبه مخرب و سلطجویانه مادر، جنبه منفی شخصیت اوست. مادر میتواند زندگی ببخشد و آن را بازگیرد. او کسیست که می تواند زنده کند و نابود سازد او میتواند تواند عشق را نشان بدهد اما هیچ کس به اندازه او نمیتواند ضربه بزند در تصاویر مذهبی مانند الهه کالی در مذهب هندو و در سمبولیسم رویایی غالباً می توان این دو جنبه مادر را مشاهده کرد شکل دیگر بیماری نوروتیک را میتوان در مواردی که وابستگی اصلی و عمده نسبت به پدر است پیدا کرد. حالت مورد نظر مردی است که مادرش سرد و کنار جو بوده است ولی پدرش تا حدی در نتیجه سردی همسرش همه محبت و علاقه اش را روی پسر متمرکز ساخته است. او پدری خوب اما در عین حال خودکامه است. هر وقت که رفتار پسرش را به پسندد او را تحسین می کند، به او هدیه می دهد و مهربانی می کند. هرگاه پسر سبب نخوشنودی او شود، پدر کنار می گیرد یا او را سرزنش می کند. پسر که محبت را فقط از جانب پدر می بیند، بردوار به او وابسته می شود. در زندگی هدفی جز رضایت خاطر پدر ندارد و موفقیت در این کار برای شادی، امنیت و رضامندی میآورد ولی وقتی که اشتباهی از او سر می‌زند شکست می‌خورد یا نمی‌تواند موجب خوشنودی پدر گردد احساس خاری می‌کند احساس می‌کند که کسی دوستش ندارد و همه تردش کردند چون این پسری در دوران بعدی حیات خیش میکوشد تا برای پدر جانشینی بیابد و به طریق دوران کودکی خود را به او وابسته سازد سراسر زندگی او بسته به موفقیت یا شکست در کسب تحسین پدر در زنجیرهی پیوسته از پستیها و بلندیها خلاصه می شود. این نومردان در کارها و مشاغل اجتماعی خود غالباً بسیار موفق هستند. آنها با وجدان قابل اعتماد و اتکا و پر اشتیاق هستند. به شرط اینکه پدر انتخابی و بعدی آنها چگونگی استفاده از این اینجور آدمها را بداند. اما این گونه افراد در رابطه خود با زنان همیشه از آنان دوری و کنارگیری می کنند. زن در نظر آنان هیچ نوع اهمیت اساسی ندارد. آنها معمولاً به طور نامحسوسی زنان را حقیر می شمارند و این احساسشان غالبا در زیر یک حالت پدرانه نسبت به دختری کوچک پنهان می شود. چون این مردی ممکن است در آغاز به واسطه این مرد بودن خود زنی را تحت تأثیر قرار دهد اما وقتی زنی که به همسری او در آمده کشف می‌کند که در برابر محبت به پدر جانشینی که هر لحظه و زمان در زندگی شوهر مجسم و مشخص است نقش درجه دوم را ایفا می کند و هرمان شوهر آغاز می‌شود مگر اینکه تصادفاً همسر هم از تیپی باشد که به پدر خیش وابسته مانده است در این صورت، او با شوهری که با وی همانند یک بچه بازیگوش رفتار می کند، احساس خوشبختی می نماید. پیچیده تر از این، آن نوع اختلال نوروتیک در عشق است که زاییده نوع دیگری از روابط پدر و مادر می باشد. یعنی حالتی است که پدر و مادر هم دیگر را دوست ندارند، ولی خوددارتر از آنند که نزاع کنند یا نارضایی خود را آشکار سازند. اما در این حال، دوری پدر و مادر از یکدیگر باعث می شود که رابطه آنها با کودکانشان از حالت طبیعی و بی پیرایگی خارج شود. آنچه یک دختر کوچک احساس می کند، است که در آن همه چیز ظاهرن در جای خود و بی و نقص است. اما این احساس هرگز به او اجازه نمی دهد خواه با پدر یا مادر تماس نزدیکتری بگیرد. در نتیجه، این دختر همیشه سرگردان و حراسان باقی میماند. او هرگز مطمئن نیست که پدر و مادرش چه احساسی دارند یا چه می اندیشند. همیشه در این فضا انصری ناشناخته و اسرارنگیز وجود دارد. در نتیجه، کودک به دنیای خود فرو می رود. به اهلام و رویا پناه می برد. از دنیای واقعی فاصله می گیرد و همین نگرش را در روابط بعدی عاشقانه خود حفظ می کند. علاوه این کنارگیری باعث بروز استرابی شدید و نوعی احساس تزلزل و بیپایگی در این دنیا می شود و غالبا به تمایلات مازوخیستی به منزله تنها راه رسیدن به هیجانات شدید و شورانگیز منتهی می شود اغلب این گونه زنان ترجیح می دهند که شوهرانشان دعوا و مرافع راه بیاندازند تا اینکه رفتاری منطقی و طبیعی داشته باشند زیرا لاعقل این وضع بار سنگین تنش و ترس را از روی دوششان بر می دارد چه بسا که آنان ناخداگاه شوهر را به چنین کاری تحریک می تا چونین وضعی به وجود آید باشد که بلا تکلیفی عذاباور ناشی از حالت انفعالی آنها پایان پذیرد اینک انواع دیگر عشق غیر اقلانی را مورد بحث قرار می دهیم. بیان که به تحلیل عوامل خاص آنها در کودکی که ریشه همه آنهاست بپردازیم نوعی عشق دروغین که از آن به عنوان عشق بزرگ یاد می شود، عشق بتپرستانه است این نوع عشق چندان کمیاب نیست و بیشتر در سینما و ها دیده میشود. اگر شخص به ای نرسیده باشد که احساس هویت و من بودن بکند که ریشه در شکوفا شدن بارور نیروهای او دارد از معشوق خود بوتی خواهد ساخت او با نیروهای خود بیگانه شده است و آنها را در معشوق خود که او را همانند خیر مطلق می پرستد و او را تجسم همه عشق، همه روشنایی و همه سعادت ها می منعکس می کند در این روند او خود را از احساس هر نوع قدرتی محروم می کند و به جای اینکه خود را در معشوق پیدا کند، در او گم می شود. از آنجا که معمولا هیچ کس نمی تواند تا پایان کار، مطابق انتظارات ای که اسیر عشق او شده است، رفتار کند، ناگزیر سرخوردگی پیش خواهد آمد، و عاشق سرخورده برای درمان خیش به جستجوی معشوق دیگری می پردازد، که گاه این کار به یک دور باطل تبدیل می شود. کیفیت خاص این نوع عشق بودپرستانه این است که در ابتدا تجربه عشق فوقالعاده شدید و ناگهانی است از عشق بتپرستانه غالبا به عنوان عشق حقیقی و عشق بزرگ نام برده می شود. گرچه مقصود از آن در واقع شدت و عمق عشق است اما فقط آتش و یأس بتپرست را نشان میدهد. نیازی به گفتن نیست که گاه نوعی پرستش بدپرستان دو جانبه در عاشق و مشوق پیدا می شود که اغلب در حد افراد چیزی جز دیوانگی دو نفره نیست. نوع دیگری از عشق دروغین اشقی است که میتوان آن را عشق احساساتی نامید. جوهر و ماهیت آن این است که عشق فقط در عالم خیال تجربه می شود. و نه در رابطه با فردی واقعی که اینجا و هم اکنون وجود دارد رایج ترین شکل این نوع عشق را در کسانی میتوان دید که از مصرف کنندگان فیلم های سینمایی داستان های عاشقانه مجلات و ترانه های عاشقانه هستند همه ی آرزوهای برآورده نشده و سرخورده عشق وصل و نزدیکی با مصرف این فراورده ها سیراب می شوند زن و مردی که در روابطشان هیچ وقت نتوانستند در دیوار جدایی میان خود نفوذ کنند، از مشاهده داستان اشقی بدفرجام یا خوشفرجام یک زوج روی پرده سینما منقلب میشوند و عشق از دیدگانشان جاری میگردد. برای بسیاری از زوجها مشاهده این داستانها بر پرده سینما تنها وسیله تجربه و احساس عشق است. عشق ننسبت به یکدیگر. بلکه نسبت به عشق دیگران که روی پرده میگذرد. آنها تا مادامی که عشق یک خیال و در رویا فرو رفتن است در آن شرکت می کنند. اما به محض اینکه این عشق این از عالم رویا به سطح روابط دو فرد واقعی پایین بیاید هر دو منجمد می شوند. جنبه دیگری از عشق احساساتی تجرید عشق در قالب زمان است. ممکن است زوجی با به خاطر آوردن خاطرات گذشته یا عشق هوسانگیز آینده به شدت به هیجان و غلیان بیاید. گرچه در همان گذشته‌ای که خود زمان حال بود نیز عشقی وجود نداشت. چه بسیارند تازه نامزد کرده‌ها یا تازه ازدواج کرده هایی که آرزو می‌کنند موجزه عشقشان در آینده به تحقق بپیوندد. حالانکه درست در همان لحظه‌ای که پیش هم هستند دیگر از دست یکدیگر خسته و کسل شدهاند. این تمایل یک نگرش عمومی است که خسیسه انسان امروزی است چون این آدمی یا در گذشته زندگی می‌کند یا در آینده اما زمان حال را نمی‌بیند او با احساس تبالود و هیجان آور دوران کودکی و مادرش را به خاطر می‌آورد یا نقشه‌های شیرینی برای آینده می‌ریزد عشق خواه با واسطه یا جانشین یعنی با شرکت در احساسهای افثانه آمیز دیگران تجربه شود، خواه از زمان حال به گذشته یا آینده منتقل شود، شکل مجرد و بیگانه شده آن به منزله نوعی مخدر است که در واقعیت تنهایی و جدایی فرد را تسکین می دهد. نوع دیگری از عشق نوروتیک را می توان در منعک ساختن نقایص خود در معشوق مشاهده کرد. که هدف از آن دوری و گریز از مسائل شخصی و عطف توجه به نقایس و زعفهای معشوق می باشد از این لحاظ افراد نیز چون گروهها یا ادیان رفتار می کنند. آنان در مورد ناچیزترین نقص دیگران تیزبین و نکته سنجند و در این میان با بیخیالی ای به نقایس خود فکر نمی کنند. و همواره سعیشان بر این است که دیگران را یا متهم کنند یا در صدد اصلاحشان برایند. اگر دو نفر هر دو این کار را بکنند، چنان اغلب همچنین است، رابطه آشقانه به قیاس به نفس متقابل تبدیل می شود. اگر من سلطجو، متزلزل یا تمما باشم، طرفم را به همه اینها متهم می کنم و بر حسب شخصیت خودم در صدد برمیآیم آیم که او را اصلاح کنم یا تنبیه طرف مقابل نیز همین کار را می کند ترتیب هر دو در نادیده گرفتن مشکلات و مسائل خود موفق می شوند و در نتیجه هیچ یک نمی توانند کوچکترین گامی در راه رشد و تکامل خود بردارند نوع دیگر از قیاس به نفس این است که مسائل خود را در کودکان منعکس سازیم. نخست باید گفت که این قیاس به نفس غالبا به صورت آرزوی بچه دار شدن تظاهر می کند. در چنین مواردی دلیل خواستن بچه این است که از مشکل زندگی خود گریخته و به مشکل بچه پناه ببرند. هنگامی که انسان احساس می کند، نتوانسته است مفهومی برای زندگی خود بسازد، سعی می کند این خلق را با بچه دار شدن پر کند. ولی در این کار، فرد هم در مورد خیش و هم در مورد کودک محکوم به شکست است. اولی برای اینکه که مسئله هستی را می‌تواند فقط به تنهایی برای خود حل کند، و دومی هم بدین علت که خود شخص برای راهنمایی کودک که در جستجوی پاسخی به مسئله زندگی خیشه است، سالح نیست. همچنین، هرگاه در ازدواجهای ناموفق مسئله جدایی مطرح می شود، باز پدر و مادر مشکلات خود را به کودک منعکس می کنند. استدلال همیشگی والدین این است که نمی توانند از هم جدا شوند زیرا نباید کودکان خود را از نعمت وجود کانون گرم خانوادگی محروم کنند اما مطالعه دقیق نشان می دهد که محیط متشنج و ملال خانواده متحد به مراتب برای کودک آورتر از جدای آشکار است زیرا لاقل کودک میفهمد که انسان قادر است با تصمیمی دلیرانه به وضع تحمل ناپذیر خود خاتمه دهد در اینجا باید از اشتباه متداول دیگری نیز سخن به میان آید این توهم در بین ادهی وجود دارد که خیال می کنند اشق یعنی نبودن برخورد و تعارض در زندگی درست همانطور که مردم عادتا معتقدند که در هر اوضاع و احوالی باید از درد و غم پرهیز کرد به همان گونه نیز عشق را به معنی فقدان تعارض تلقی می‌کنند آنان چنین استدلال می‌کنند که کشمکش های ایشان چیزی جز برخوردهای مخرب و زیانآور نیست و برای هیچ از دو طرف سودی ندارد اما اساس مطلب این است که اختلافات اغلب مردم در واقع کوششی است برای گریز از اختلافات واقعی این اختلافات بر سر مسائل آنچنان سطحی و ناچیز هستند که به واسطه ماهیت خود منجر به روشن شدن موضوعی نشده و راه حلی برای مشکلات ارائه نمی کنند. تعارضات و اختلافات واقعی بین دو نفر که وسیله پرده پوشی با قیاس به نفس نیستند، در عمق واقعیت درونی طرفین درک و تجربه می شوند و به خلاف تعارضات دیگر مخرب نیستند. این اختلاف ها منجر به روشن شدن موضوع و رفع ابهام می شود و با نوعی مصفا کردن رابطه دو طرف به آنها دانش و نیروی بیشتری می بخشد. این موضوع ما را وامی دارد که آنچه را پیشتر گفتیم بار دیگر تأکید کنیم. حصول عشق واقعی فقط زمانی امکان دارد که دو نفر از کانون هستی خود با هم رابطه برقرار کنند. یعنی هر یک بتوانند خود را در کانون هستی خیش درک و تجربه کند واقعیت انسان فقط در این برقراری ارتباط از قانون هستی است زندگی فقط در همین جاست و بنیاد عشق نیز فقط در اینجاست عشقی که بدین گونه درک شود مبارزهای دائمی است رکود نیست بلکه حرکت است رشد است و با هم کار کردن است حتی اگر بین دو طرف هماهنگی یا تعارض، غم یا شادی وجود داشته باشد، این امر در برابر این حقیقت اساسی که هر دو طرف در کانون هستی خود یکدیگر را درک می‌کنند و بدون گریختن از خود احساس یگانگی می‌کنند، در درجه دوم اهمیت قرار دارد. فقط یک چیز وجود عشق را اثبات می‌کند: عمق ارتباط، سرزندگی و نشاط هر دو طرف. این میوهیست که عشق را فقط با آن میتوان شناخت. آدمهای ماشینی همانطور که از عشق ورزیدن به یکدیگر عاجزند آجزند، خدا را هم نمیتوانند دوست داشته باشند. تباهی عشق به خدا نیز به ابعاد تباهی عشق به انسان رسیده است. این امر با این گفته که ما در عصر حاضر شاهد یک تجدید حیات دینی هستیم سراپا تناقض دارد. هیچ حرفی نمیتواند تا این اندازه دور از حقیقت باشد آنچه ما شاهده آنیم با وجودی که چند استثنا هم وجود دارد بازگشتی است به مفهوم بطپرستانه خدا و تبدیل و استحاله آن متناسب با انسان از خود بیگانه امروز این سیر بازگشت به مفهوم بطپرستانه خدا را به سهولت می دید. مردم همه مستربند به اصول یا ایمانی پایبند نیستند و هدفی جزین که کرکورانه به پیش بروند در مقابل خود نمی بینند. در نتیجه همواره در سطح بچگی باقی می مانند و امیدوارند وقتی نیاز به کمک پیدا می کنند پدر یا مادر به فریادشان برسد درست است که در فرهنگ های دینی مانند فرهنگ قرون وستا خدا در نظر فرد عادی همچون پدر یا مادری مددکار بود اما در عین حال چون این فردی خدا را جدی تلقی می کرد بدین معنا که هدف بزرگ و قایی زندگی او این بود که طبق اصول خداوندی زندگی کند و رستگاری را عالی ترین نقطه توجه به شمارد آنچنان که دیگر فعالیتهایش تابع آن باشد امروزه از چنین کوششی اثری دیده نمی شود زندگی روزمره به طور کامل از ارزش دینی جدا شده و سراپا وقف تلاش برای کسب آسایش های مادی و موفقیت در بازار شخصیت شده است. اصولی که کوشش های دنیاوی ما آنها استوار است، چیزی جز بیعتنائی، بیتفاوتی و نفسپرستی نیست که غالبا نفسپرستی را با برچسب اندیویژیالیسم یا ابتکار فردی مشخص می‌کنند. کسانی را که واقعا فرهنگ مذهبی دارند می توان با کودک هشت ساله‌ای مقایسه کرد که به پدری مددکار نیاز دارد تا در عین حال تعالیم و اصول او را نیز در زندگی خود مورد تقلید قرار دهد. اما انسان امروز بیشتر شبیه یک بچه سه ساله است که هر وقت به پدر احتیاج پیدا می کند با فریاد او را میخواند. در غیر این صورت یعنی زمانی که خود به تنهایی میتواند بازی کند، دیگر به هیچ کس و هیچ چیز نیازی نداشته و احساس خودکفایی میکند. از این لحاظ، ما با اتکای کودکانه به خدای انسان نما، بیان که زندگی خود را بر محور اصول خداوندی تغییر داده باشیم، به قبایل ابتدایی بدپرستان نزدیکتریم تا به فرهنگ دینی قرون وسطا. به لحاظ دیگر، موقعیت دینی ما وجوه و خصوصیات نوینی دارد که چه مشخصه جامعه سرمایداری معاصر قرب است. بار دیگر میتوان به آنچه در بخش قبلی گفته شد اشاره کرد. انسان امروز خود را به کالا تبدیل کرده است. او با حساب کردن وضع و موقعیت خود در بازار شخصیت، انرژی حیات خیش را چون نوعی سرمایه گذاری که باید بیشترین سود را برای او بازگرداند تلقی می کند. او با خود با هم آنش و با طبیعت بیگانه شده است. هدف اصلی او مبادله سود بخش مهارتها، دانش، شخص خود و کالای شخصیتش است، با هر کس دیگری که مانند خود او مشتاق یک معامله عادلانه و سود بخش باشد. زندگی هدف دیگری جز حرکت اصلی، جز مبادله عادلانه و لذتی جز مصرف کردن ندارد. در چنین اوضاع و احوالی دیگر خدا چه مفهومی خواهد داشت؟ در حقیقت، خدا مفهوم اصلی خود را از دست داده و به مفهومی که منطبق با فرهنگ انتظائی کامکاری است تبدیل می شود. در تجدید حیات دینی زمان حاضر، مفهوم اعتقاد به خدا به صورت یک وسیله روانشناسی درآمده است تا فرد را برای شرکت در مبارزه یا رقابت آماده تر سازد دین با تلغین به خود و رواندرمانی دست به دست هم داده است تا فرد را در کسب و کارش یاری دهد انسان تا پیش از 1930 هنوز یاد نگرفته بود که برای اصلاح شخصیت خود دست نیاز به سوی خدا بلند کند پرفروشترین کتاب سال 1938 یعنی آیین اثر دیل کارنگی 100 درصد در سطح در در دنیوی باقی ماند. عمل کرده کتاب کارنگی در آن زمان همانند عمل کرده پرفروشترین کتاب امروز قدرت تفکر مثبت اثر عالی جناب پیل است. در این کتاب دینی حتی این سوال پیش نیامده است که آیا این توجه بی امان ما به کسب موقعیت، فی با روح مذهب یک پرستی تناسب دارد یا نه؟ برعکس، در مورد ارزش این هدف عالی هیچ تردیدی ابراز نشده است. اما توصیه شده است که به خدا ایمان داشته باشیم و دعا کنیم تا بدین وسیله بر قدرت خود برای کسب موقعیت بیفزاییم. درست همانطور که روان پزشکان امروزی شادی و خوشبختی را برای کارمندان لازم می دانند تا در جلب مشتری موفق تر باشند، ادده از پیشوایان دینی نیز جهت کسب موفقیت برای خود اشق به خدا را توصیه می کنند. خدا را شریک خود کن بیشتر به معنای شریک کردن او در کسب و کار است تا اینکه در عشق، عدالت و حقیقت با او یکی شدن. درست همانطور که نوعی ادالت غیر شخصی جایگزین عشق برادرانه شده است، خدا نیز به یک مدیرعامل بینامونشان شرکت تعاونی جهانی تبدیل شده است. می‌دانیم که او آنجاست، نمایش را می‌چرخاند، گرچه احتمالاً بدون او هم خواهد چرخید. هرگز او را نمی بینیم. ولی رهبری او را تایید می کنیم. در صورتی که هرکه به تنهایی کار خود را انجام می‌دهد.